سلام عليكم و رحمت الله استغفر الله ربی و عطوب و إليه و فوضو عمره ان الله بسیرم بالبادر و اعوذ بك من حمزات شیطان اللیم الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و عليه و نتوکل عليه و نسلی و نسلم على حبیب الله العالمين العبد المعيد والرسول الخاتم الأمجد الذي سميت في السماء بأحمد وفي العرضين مع بالقاسم مصطفى أبي الزهرى محمد واله تيبين طهرين المسومين المكرمين ولعنت الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب آلمین اللهم کند ولیی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا في فی ها وفي كل و فی کل ساعت ولیم و حافظم و غائده و مناصره و دلیلا و دسکنه و عن و تمتاهو فی ها تبیلا برحمتک یا رحمه رحمه رحمه در دمیم صاحب مقدس قطبه علم وجود نازرین و صاحب زمان و تحجیل در ظهور بر برکتشون صلوات دیگهی رم ناید بفرما از عزیزه دلن اگر موبایل دارید موبایلاتونو قطعا خاموش کنید یا به حالت بی صدا بذارید که مزاحممون نشه که حواس منمی و خدای نکرده تو حرف پرت نشه خیلی خوبه خدا رو شاکریم که الحمدلله رب العالمین دهه‌ی دوم محرم همو زنده ایم میتونیم سر سفره ی عبدالله باشیم پیغمبر اسلام در یک جایی مشغول به رسالت شد به مجبور شد که مردم رو هدایت کنه که در حقیقت محل اصلی اجدادش نبود بلکه پیغمبر از اورشلیم آمده بود به جزیرت العرب اونها فرزندان حضرت ابراهیم و اسماعیل هستند و به اصطلاح افراد مستعربن یعنی بعدا عرب شدند و آمدن به جزیرت العرب اضافه شدند یه ده افراد بسیار بسیار بیتمدون دور از محظرتون حیوان صفت و یه ای که حتی دخترانشون رو همون جور که میدونید زنده به گور میکردن پیغمبر وقتی مبعوض شدن امیر المومنین در مارد اون روزها میفرموند که پیغمبر مبعوض شد در جایی که علاشر دین علاشر دار بدترین جای عالم و بدترین اعتقادات یه مردمی که حتی زندگی شهرنشینی هم نداشتن من گفتم موبایلاتونو خاموش کنید، نگفتم با موبایلاتون بازی کنید، یه چیزی عروش روش بخونید. خیلی خوب. الان شر دین، الان دار، وارد یه منطقه شدن که زندگی تو این منطقه حتی سخت بود. بدتر این جای دنیا با آب و هوا کار حالا با آب و هوا نداریم به اعتقادشون کار داریم. نبی اکرم بسیار زحمت کشیدن تا این مردم از این حالت در بیارن. حقیقت داستان اینه یکی از معجزات پیغمبر اینه که در میان مردمی مبعوث شد که بدترین مردم عالم بودن از اینا بدتر اصلا پیدا نمیشه تو زمان خودشون حالا چرا این کارا رو میکردن بحثش مفصل ما دره اوله یعنی نه دوم خیلی اونجوری شما محصولتون مثل دهی اول نیست منم توانم مثل دره اول هید. اما هم اندازه بگیم که آینهای مردمانی بودن که بدترین چیزها رو حتی می‌خوردن زده زهراتون خود پرشون می که شما کسانی هستین که از آب گلالوت می از آب مردار مرداب می خوردید. پدرم شما رو از این حالت دارم. کار نده اینا یه افراد بادی نشینی بودن هیچی نمی فهم بدن. همه قبیلهی همه دنباله این که خلاصه زندگیهاشون بر پایه جنگ و جدال و حمله و اینا میگه شما ایون اون موقع حالا دوران تحصیل شما تحصیل کنید بالاخره تاریخ همتمن مطالعه کنید. چین روم مصر ایران اینا تمدن های دور جزیرات العرب بودن همه هم متمدن بودن مطاریخ 2500 ساله ای حالا به سلامی شانشایی داریم شانشایی مهم نیست مهم اینه که تمدن داشتن شهرنشین بودن زندگی داشتن حالا بگم براتون بد نیست ما دو هزار سال پیش اوراق قرزه چاپ میکردن حالا اروپا تازه فهمیدن اوراق قرزه چیه دو هزار سال پیش در زمان صدارت انوشیروان شیروان اینا مشکل مالی پیدا کردن و اوراق قرزه چاپ کردن یعنی با این اوراق قرزه مردم اومدن پول میگرفتن حالا که گفتم این نکته بد نیست پیدایی حالا چون, از این چون روزا از این مزخرفات تو مملکت ما زیاد چنده میشه آنم دونام چی بودیم چی بودیم اسلام اومد خراب کرد اینا نیست ولی گفت تمدن داشتیم هیچ بحثی نیست اما این تمدنهای اطراف هم تمدنهای استکباری بود یعنی یه قدرتی همه چیز رو در مقابل خودش ذلیل میدونست و همه چی رو جذب خود و همه چیز مال خودش بود اصلا همین انشیوان که اشاره کردن تو این پادشاهای قبل که مطالعه تا تازه انشیوان معروف هست به عنوشیوان عادل یعنی مثلا دوز پادشاهی خوب بوده یا عادل بوده مثلا یه داستانی دارد سعدی به نظر در آورده به نام کفش ساز حالا همین اصطلاحاً همین اه... کفاش امروز ما میشه اون موقع به نام کفش ساز این داستان رو خونده انشیوان وقتی این اوراق قرضه رو صادر کرد به همه مردم داد یه مشکل مالی برای تأمین سپاه پیدا کرده بود این اوراقو چاپ کرده بود که از مردم پول بگیره و با این پولی که از مردم میگیره خلاصه ارزان موضوع شما سپاه رو را بندازه این کفش ساز وضع مالی خیلی خوبی داشت منتها میدانید که تحصیل در زمان انوشیروان فقط مال موبدان بود یعنی فقط اون کسانی که به اصطلاح کشیش اینا بودن روحانه اینا نبودن، خاخام اینا بودن حالا معادلش میشه موبد کسانی که در معبد زندگی میکردن معبد رو نگهداری میکردن موبدان زرتوشدی اینا تحصیل فقط مال اینا بود یعنی مردم عادی حق با سواد شدن نداشتن یعنی کسی حق نداشت با سواد بشه با سواد مال خانواده سلطنت بود و موبدان که حال خانم سلطنت هم بلاخره به با, با موبدان بود فلزا این که افساز یه نامهی رو داد براش نوشتن به انوشیروان خودشم که سوات نداشت داد براشی کسی که از موبدان بود نوشت انوشیوان من حاضرم تمام اوراق قرزه رو که تو داری و میخوای بدید چون خیلی بعض مالی خوبی داشت همه این اوراق قرزه رو تأمین کنم به یک شرط اجازه بدی فرزند من درس بخونه با سوات بشه. گفتن این آدم میخواد تقیان کنه جای پادشاه رو بگیره سرش رو بزنی در این حد که حتی اجازه ندن تحصیل میشه میتون باشه یه وقتی جای حرف شد گفتن آقا ما دین داشتیم زرتوش با. اینجا داشتیم خودمون دینداری میکردیم اینا اومدن نذاشتن عرب اومدن دین ما از ما گرفتن به زور اومدن تو با شمشیر اومدن اینه نیه خبشالله خود شما ها مطالعه میفرمایید و اهل مطالعه هستی در هم دو داده. جنگ بین ایران و عرب در زمانی خلیفه دوم اتفاق افتاد این هم که میگن امام حسن مشتبا فرماننده لشکر حمله به ایران بود فقط مزخرفه جای شنیدید دید که این حالاصتحریف است در تاریخ برای که میخوان اهل بیت رو هم وارد این کار کشور خلیفه دوم بکنن حالا ما مجوشیم تو این شعرامون هم وارد شده من مسلمان شده یه دست امام حسنم این به اون پایه است که اومده ولی همچی چیزی نیست اون چه که حقیقت داره بله ما شیع شده و مسلمان شده یه دست اهل بیتیم اما نباشم شیر با رفتارشون با کردارشون جنگ جنگی بوده بین ایران و خسروپر بین عراب و خسرو پرویز، که پای اون در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده این کوفه ای که شما این روزها راجبش خیلی میشناس میشنوید یکی از بی اصالت ترین شهرهای تاریخه چون اصلا شهر نبود کوفه کوفه رو سعد عبی و قاس آمد و به عنوان پایگاه نظامی برای حمله به ایران آماده کرد تمام کسانی که تو کوفه زندگی میکردن فقط نظامی بودن کارشون نظامی گری بود اومده بودن برای جنگ همشون شون برای جنگ اینجا اومده بودن بعد از یه مدتی چون این لشکرکشی و ماندن و اینها طولانی شده بود فرزندانشون همسرانشون اومدن به این مجموع اضافه شدن مجموعی شدن اضافه شدن برای این اضافه شدن باعث شد که یواش یواش کوفه تبدیل به شهر بشه و این شهر یکی از شهرهای تأثیر گذار در تاریخ عرب شد اما دو تا مرکز تصمیم گیری بود یکی بصره یکی کوفه کار ندارم همین اندازه بگم در کوفه مستقر شدن جنگشون هم با خسرو پرویز بود یه محدوده یه جنگی داشتن بعد این لشکت کشی ها تا وسط ایران حتی تا شمال ایران کشیده شد اما شما یه تاریخ بخونید ببینید مثلا این جنگ تا مشهد ادامه داشت که این جنگ شما بخونید تا مثلا کابل رفته باشه نرفته اونام هم همه این موقع تحت تسلط ایران بودن این زبان افغانی که میبینید ایرانیه برای اینکه پادشاهی تا اونجا بوده چه اتفاقی افتاد اتفاق این بود که با یه عده‌ای از اونها جنگیدن و مردم در حقیقت از حکومت مرکزی رضایت نداشتن در ایران نمونش همین بود که میگفت بعد چی اومد ندای پیغمبر ما چی بود؟ اطل بلعلم منن مهده الالهت از گهوار تا گور دانش به جوی که وقتی پیغمبر دیدن آقا یه پیغمبری اومده اینا یه عمر دینشون میگه که آقا درس خوندن مول فقط موبدانه حالا یه پیغمبری پیدا شده داره چی میگه؟ میگه آقا از گهوار تا گور درس بخونید چی زیاد بگیرید فهمتون زیاد کنید عقلتون رو ببرید بالا. و پیغام پیغمبر تا امروز هم حالا بین نمیدونم ما هنوز این پیغام رو گرفتیم یا نه دو هیاتای ما دنبال چیزیات یاد گرفتنیم یه دنبال سرسدا کردن نماشون با خودش بشین حساب کنه بشت سینه زنی خیلی خوب پانجیره دمی خیلی عالی چه میدونم هرچی اضافه ترشو شما دوست داری برای فکر کن از این طرف بشم هم بالاخره همه زیارتنامه ها همه اینها جمعش خیلی خوب اصلا پایه هیئت ها همین عزاداری و عشق ریختن گری کردن و بود اما همش همینه یا اینکه معمولا ما سعی می‌کنیم که خودمون رو صاحب کرامات نشون بدیم بعدم اینکه فقط مثلا تو شور عده مثلا حضور پیدا مگه مثلا روزم نمیان تو وقتی وقتش لغ شدن سینه بزنم میاد تو نمیاد ایرادش هم از بعضی جا شروع میشه مثلا ما اون کسانی که مثلا تاسیس کننده بعضی هیئت‌ها هستن خودشونی ادعایی مثلا دار. مثلا ما اون منبر گوش نمی‌دیم مثلا یه جایی میشینیم منبر شد ما میاییم مثلا برای سینه زن مثلا زاکر این رو میبینید کالا تو هم که اینجوری نیست ولی بعضی‌ها یه طور می ذاکر زاکر نمیاد میذاره یه تایمی که حالا مثلا ببینید چند تا دیگه الا مراسم دارون یه حرف دیگه است می‌بینید اینا زا مثلا این می اون زاکر ثابت این مثلا یه هیعتیه نمیاد میاد میبرنش توی خونه یه پستویی فلان دورش هم جمع میشن و ماساژش هم میدن و باشم حرف میزنن و میاد کلا وقتی حرف میزنن مقتلم تایم روز نخوندن چی میشه اینکه ما یادمون رفته پیغمبر چی گفته اطلب العلم مهد علل لحد فلوزوی میکروفون در اختیار هر کسی قرار میگیره اونم هم میشینه پشت این هرچه دلش میخواد میگه همین سعادت آباد من چند روز بیش دو سه نفر از دانشوی دانشگاه الهیات اومدن گفتن که یه آقایی پیدا شده یه محملاتی میگه خیلی هم دوره جمع شدن مثلا با عدله میگه که از علی اصقری وجود نداشت. اصلا تو روقعی که در جان خودش که اصلا نبوده اصلا علی اصقر هم نبود اون عدلهش چیه یا در مقاطل نوشتن که این شخص کسی بوده عبدالله رزی علی اصقر نمید یعنی حتی انقدر نمیفهمد که عبدالله رزی همون علی اصقره هیچ فرق نمی چون اسمش عبدالله بوده و عبدالله رضی بوده منتها همه یه فرزندان عبی عبدالله پسرا اسمشون علی بوده دخترا اسمشون فاطمه. و فرمودم اگر خدا هزار تا پسر به من بده اسمشون میذارم علی هزار تا دختر به من میذارم فاتمه فاطمه حضرت روغه رو اونی که میگفته در واقع آشور حضرت روغه نیست چون اسم حضرت روغه رو بلد نبوده حضرت روغه یه رو فضر رو در تاریخ بنامه فاطمه سقرا آمده کوچکترین فاطمه بوده فاطمه بزرگ فاطمه بنتالحسینه که زن حسن مسننا شد حسن مسننا فرزند امام حسن مشتبا بود که در جنگ و در واقعی کربلا هم حضور داشت دو نفر کلن در واقعی آشورا زخمی شدن یکیش حسن مسننا بود بقیه شهید شدن حسن مسننا شهید شد بنی حسد پیداش کردن نگهش داشتن و بهبودی پیدا کرد با فاطمه بنتالحسین ازدواج کرد تمام سادات حسنی از نسل حسن مصنا هست از حسن... نسل حسن موسنه دومین فاطمه فاطمه اوست که خانم سکینه یا خانم سکینه است و سومش فاطمه سقراست که خانم روغای است چرا شد روغایه؟ بعضی از بزرگان میگن اینقدر کبودی به بدنش بود که اورو رو لقب داده این رقعیه از اینجا میاد کسی که بدنش که بوده حالا دست یکی کسی که حالا کلن پنج دفعه مقتل نخونده اگر هم خونده مثلا یه مقاتل نامتبری رو خونده هرکی هم که حالا قلم دستش بیاد مینویسه بعد چی میشه این مهمان رو میگه. حالا خیلی هم فرقه نمی کنه به اصل دین که خیلی صدمه ای نمیتونن وارد کنن این واقعی بوده قطعی ما معصومو کشت همه این چیزا همزه هم هم به شما بگم اگر هیچ کدوم از حواشی اتفاق کربلا نباشد یعنی اصلا بگیریم فرض رو بر بذاریم می‌ذاریم عبدالله هیچ فرزندی نداشت اون دیگه از این مولاتا هیچ برادری هم نداشت هیچ زنوبت چگم با خودش نبود اصلا هیچ کدوم از اینا بگیم نبوده فرض رو بریم بذاریم همه این واقعه نبوده خود شهادت عبی عبدالله به تنهایی برای مصیبت عالم امکان کافیه هواشیش هم دیگه لازم نیست هواشیش هم دیگه لازم نیست اینقدر حالا داده بحثمون راجبه تمدن های اطراف عربستان بود ایرانی ها سواد نداشتن ولی تمدن شهرنش بودن رومی ها چی؟ رومی ها هم بسیار خوبی داشتن و اتفاقا هم با سواد هم بودن مصری ها هم که یک تمدن خیلی گوهنی دارن شاید از ایرانی ها هم قدیمی دارن چینی ها هم که خب ریشه ریشه به عربستان دور بود ولی بودند. اینا چی؟ اینا قبیله قبیله قبیله تازه در زمان تولد وجود نظری نبی اکرم که اون سال آمالفیله که شما شنیدید و عبره اون زمان تا اینا شهرنشینی اتفاق افتاد، به خاطر مکه ادی آمدن توجار می اومدان، می آمدن به این مکان وارد می شدن شهرنشینی در مکه اتفاق افتاد و بعد هم مدینه چون اینا از رفته آمد خسته شده بودن، اما رفته رفته اینا با اینکه شهرنشین شده بودن، انا هنوز قبیله ای بودن. تو یه شهری هم که شما دینو درگیر بودن، ولی تو این شهر باهم زندگی میکردن، ای بودن. حتی بعد از ابی عبدالله قبیله ای مونطای مراتب پیغمبر اومد اینا رو منسجمشون کرد از این حال روز درشون آورد قلوب اینها رو به سمت خدا متوجه کرد کاری که پیغمبر باید میکرد این بود قلوب اینها رو به سمت خدا متوجه کرد یه عده‌ای که هیچ‌چینی نمی‌فهمیدن دوران زندگی نبی اکرم دوران بسیار سختی بوده من کلاً فکر کنم دیمونم. سه شب اینجا یا چهار شب حالا نگونه کنم چاره اگه بخوام همش راجب تاریخ حرف بزنم به هیچ چی دیگه نمیرسم همین اندازه اشاره کردم که اینا از اون زندگی به یه زندگی جدید بودن همینا رو به برای این که آمدن خدمت پیغمبر یا رسول الله ما یه عده وحشی بیابانگرده بی سواد تا برهنه گرسنه بدبخت بودیم تو ما رو به اینجا رسوندی که از توی ما مقداد درآمد مالک درآمد عبی درآمد زهیر در برایی در آمد حالا تازه بازی یه دیگه هم اون موقع بودن که بعد منحرف شدن ولی موقعی تشکر اونا هم بودن مثل تله زبعیر چه منونم بگیرید از این دست خیلی بودن که اینها دو دون زمان هنوز با پیغمبر بودن یا رسول الله یه چیزی بخوا نبی اکرم از ما درخواستی کن جون میخوای خون میخوای مال میخوای چی میخوای هرچی شما میخوای ما در خ میدونی ما ما میدونی ما کی بودیم؟ میدونی ما رو کجا رسوندی؟ ما هم هر چی شما میفرمونیم قرآن به کمک رسول الله و من عليه از الل علیه عج قربا هیچی از شما نمیخوام الا محبت به خانواده مبدت به خانواده نسبت به خانواده من مبدت بشته باش. البته یعنی چی؟ یعنی محبت همراه با اطاعت. همین اندازه کافی نیست فقط دوست داشته باشی. من خانواده پیغمبر رو دوست دارم کافی نیست. به درد نمی‌خوره. محبت خالیه فقط فقط و فقط یه حرفه دوست داشتن. اطاعت می‌خوان از اون بالاتر. یعنی قبل از اون دشمنیه با دشمنانشون محبت خالی بشه در موید که ماموسنو کشت اونو زیاد من میگم حیعت محبان الحسین کوفه بچه های حیعت الحسین کوفه اتفاقان هم خیلی زیاد بودن هیئت رزمندبان بودن 24 هزار نفر بودن نامه بشتند 24 هزار نفر برای ابی عبدالله نامه بشتند تو بعضی نقلا 18 هزار تو بعضی نقلا 24 هزار سلیمان سرد خوزایی که بعدن جز سردمداران توابین شد این نامهار وردا شعور باری ابی برای حسین جان حسین جان درخت ها سبز شده است ما رود را افتاده درخت ها شکوفه دادن ما منتظر تو هستیم با تو بیعت میکنیم کوفه در اختیار توست ما آماده پذیرایی از هست تو هستیم دروغم نگفته بود دروغم نگفته بود هم نگفته, نگفته بود واقعا هم حسین ابن علی رو دوست داشت مثل ماها مثل ماها ابی عبدالله رو دوست داشت فرقی داشتن این که با دشمن ابی عبدالله دشمن نبود. ابی عبدالله رو دوست داشتن ابی عبدالله هم دوست داشتن ابی عبدالله رو دوست داشتن ماویار هم بعدشون نمی اومد ابی عبدالله رو دوست داشتن با یزیدم دشمنی نداشتن چی شد؟ در یک صبح بزر برگشتن همه نماز مغرب مسجد پر بود نماز اشار رو که حضرت مسلم امنعقیل میخواست بخونه دو نفر تو مسجد موندن همه رفتن چرا؟ چون با دشمنش مشکلی نداشت حالا گفتن عبدالله دو, دو, دو جور حرف زد یک یه در تعدید کرد اونا که ترسیدن خدا خداحافظ شما یه درم تتمی کرد آقا هرچی چی نو میده شرمآوره که بگیم در واقعه آشورا بعضی شرکت کرده بودن میدونی چی گرفته بودن کمتر از یک کیلو تقریبا من اگه بخوایم یک سا نزدیک 750 گرم خوراک برای اسبشون عبی عبدالله رو کشتن برای 750 گرم خوراک برای حیونش برای عصبش چقدر میفهمیدن چقدر عقل بودن حالا اینا کی بودن؟ یه جاهلی که این جاهلیتشون واقعا جاهلیت نه این حرف خیلی جاهلیت بسن داستانی بشنه این جهلب در اینان رو درآورد؟ بود تا کجا جاهل بودن؟ زمان امیر در ج... قبل جنگ سفین که همه اتفاقات که میبینید یه ریشش تو جنگ سفینه ریشه اصلیش که در سقیفه است برای همین همه وقتی آمد توی قتلگان زینب کبرا به عبی عبدالله با. سلام به توی کشته یه روزه دوشنبه سقیفه دوشنبه اتفاق افتاد کل دوشنبه کشته تو سقیفه جومه نیست ابوی عبدالله جومه کشتن آشورا جومه بود سلام به توی کشته یه روز دوشنبه. دوشنبه کشتن کشتنه تو زقیفه صفه اینم یکی از اون اتفاقات بود اون ملعون عقل. ابو موسای عشری گفت من همینطور که یه انگوشتر رو کردم دستم در میارم علی رو ازل میکنم و معاویر هم همینطور دومی خلاصه که از طرف معاوی اومده بود امرو آس آمد رفت رو منبر و من هم همین تو که یه انگوشترد دستم در میارم علی رو خل میکنم و همین جورم دستم میکنم مواویه رو جانشون میکنم اومد پایین ابو موسا بشکو گولم زدی کلا سرم گذاشتی خدا ازت نگذره چرا؟ ابو موسا رو انتخاب کردن چون فقط دیندار بود مغز نداشت که انتخابش کرده بود؟ ادهی که دنبال بودن حالا کیا بودن یه دیگه هیچی نمی فهمیدن. سپاه مقابل چی بودن الله حکم چقدر نمی فهمیدن سفیر امیر رفت برای شام پیغام ببره وارد شد سوار بر یک شطوری بود که به اسطلاح این شطور ناقه بود یعنی شطور ماده به مزی وارد شد یک کسی گوشه کوچه نشسته بود اجاش بلند شد این جمل مال منه گو مرد بس ناقص جمل نیست این شطور ماده است جمل نره میفهمی گو نخیر این جمل مال منه بی خود میگی این جمل مال منه بیا پایین داد و هوار مردم ریختن بردن قاضی گو بابا قاضی اینی که من سوارم ناقص این میگی این جمل مال منه گو تو کی هستی اصلا گو من سفیر علی بن نبطار چون سفیر علی هستی من نمیشه اوک بدن برید خود ماویه حکم بده. رفتن سراغ ماویه. ماویه چی شده؟ گفت بابا من سفیر علی ابن نبی طالمن برای تو پیغام آوردم. وارد شام شدم، سوار این ناقه بودم، از راه رسیدم، این میگه این جمل مال منه. ماویه لبخندی زد گفت راست میگه. این جمل مال اینه. تو فکر غلط کردی جمل اینه، بدید ببره. ای جمل دادن بود. خیلی خوب حالا یه ناقه از خزانه بیارید بدید به این رفتن شطور ماده بودم بشتادم برو به علی بگو دارم میام سراغت با یه لشکری که فرق بین شطور نر و ماده رو نمیفهمن با یه ابله دارم میام هیچی نمیفهمن شطور ماده رو میگین شطور نر منه اینقدر نمی داده شد که میبینی داده شد که شما میبینی چون فهم نبود همه صدماتم هم به اسلام سروران من از ندانستنی ها و جهل ها خورده شده دو دسته به اسلام خیلی صدمه زدن اول متدینین متعصبی که هیچی رو نمیدیدن مثل که شورای حقازی ابو موسی اشعری و امسالون دوم ابلهان در تاریخ مثل خوارج، مثل خوارج. هیچی نمیفر بدون هیچ یعنی مغزشون به یه جایی رسیده بود که میگفتن نقا همه رو باید بکشیم علی معاویه امراد بابا اینا بلاخره یکیشون خوبن یا علی خوبه یا معاویه خوبه بلا تشبیه مقایسه ای بینشون نباشه ای داده خدا حضرت امیر میفرمان دنیا کارت به کجا رسیده منو با معاویه مقایسه میکنم نه با معاویه علی رو با عبی بگر مقایسه میکنم ای خدا کارت به کجا رسیده دنیا خماله خب چیه ماله همین ندونستن و مطالعه مال مطالعه نکردنا مال نشناختنا مال فقط شورداشتنا مال فقط شورداشتنها مال فقط شورداشتنها جلسی علما برید بعضی وقتا ببینید بد نیست چون شما ممکنه کمتر این جلسات رو تجربه کنید نمیذارن بعضیا، ها بعضی ما رو عجب میکنن و همین جلساتو خودمونو ببینیم بریم به از جلساتو جلساتو علمایی رو برید شرکت کنید بعد نیست کل جلسه یکی یا دو تا سخنرانیه همین آخرش هم طرفی روزه میخونه جمع میکنه چی ما هم بگیم ما خواهیم بگیم آقای بحچت آقای وحید کمتر از ما, ما من مدانم این ماموساینیه اما خیلی ماموساینیی تو نیست اموسی اون کسیه که بزنه داغون کنه خودش خیلی خوب میگه تجلی عبیاب اندوز مشابه حال هر کسی میتونه همش همین نیست امروز بچهای شیعه وقتی به درد میخورن که بتونن با استدلال جواب وهابیتو بدن اگه ازت پرسید چرا صورتتو کندی جواب داشته باش بلد باش قولا یه بخمو دیروز توی هیئتی یه چیزی یکی به من گفت هیئتی که بعدش شما میرم دیشب يا آقای من گفت یه آقای گفتم که حالا نمیخوام آقا هم نمیدونم کی بوده ولی متاسفانه روحانی هم بوده من بازش پرستم گفتم آ یه ادله ای از امام زمان به من بدین گفتوت مراجع میگن امام زمان هست پس هست تو مرد بیعقل عقل این چه عدل ای رو امام زمان قبول نداره تو میگی مراجع گفتن درست دو برس دوزی به در مراجع کیه هم این هاست از اینجا داره ما دنبال مطالعه نمیریم یه ای داریم و یه عمری به ما دادن گفتنه خواه شما ده سال بیست سال سی سال چل سال پنجاه سال تو دنیایی وقت تو صرف چیزایی بکن که به درد نیت نیتتو عوض کن این دنبال نیت همون آقا من برای چی دارم زندگی میکنم برای که زن بگیرم بچه دارشم خونه بخرم مقازه بخرم ماشین بخرم برای بردم <تصفيق> همش اینه اسباب زندگیه نیتم برای زندگی چیه نیتم برای زندگی چیه حدف هم تو زندگی چی؟ اگر کسی هدف ندارد در زندگی با یه بودایی چه فرق میکنه؟ با یه مسیحی چه فرق میکنه؟ با یه یهودی چه فرق میکنه؟ عشد و بعضی از یهودی ها از ما بهتر میدونی چرا؟ چون یهودی هدف داره هدف داره میگه تمام عالم مال یهودیاست تمام عالم مال و برای این هدفش داره چارنل کار میکنه چارنل هیچی هم نمیفهمه میره جلو هدفش یه جوریه که دنبال این هدفه تئوری سناشون هم مینویسن دور از محضر شما که نشستید اینجا میدونید چی میگن؟ میگه همون جور که آفات آفات و حشرات رو باید در نباتات کشت انسانهایی که با اق... ما ما همعقیده نیستن هم باید از بین برد ببینید کجا رستن یعنی ما مثل حشره میدونن فرض نظرش اینه که من اگه کشتم منم تو حق نداری بکشی کشی من اگه سلاح دارم منم تو نباید داشته باشی تو نباید داشته باشی من اگه میزنم یه تفکری دارم با تو کی هستی که صلا داشته باشی کی هستی میزونی بوم به اتم داشته باشی من باید داشته باشم تو نباید داشته باشی حالا rays از اعتقادی با بوم به اتم مخالف این MXN خدا باید داشته باشی کار نبه از بیندرشی است کار نبه نظمه بوم به اتمی داشته باشی تو اروفم نادم منی؟ اگه اونو ما رزده ما چکا یکم صلاه با صلاه امام علی نمیشه اکبر نمی‌شه که زنده داغون منکرت صداله اکبر برسه چیز خیلی طول می‌کشه. بو داشته باش. باید آمادگی داشت در, موق... در مقابل تفکراتی که در دنیا میخواد شیعه رو بزنه. باید مقابلش ایستاد. چاره‌ای هم نیست. کار نداره. وارد این بس نشی. من وقتم خیلی زیادی است. چی شد؟ یه اتّد آدمی بی سواد، یا اتّد کم عقل، یه اتّد آدمی که هیچی نمی فهمیدن. و خانه نشین کرد. خانه نشینی باعث شد که اون کسانی که مؤمن بودن کم بشن. به جایی رسید که تعدادشون اصلا خیلی کم. امام مشتبا همی فهمیدن من ده نفرم یار ندارم ده نفر. ده, ده نفر ده نفر من یار ندارم ده نفر شاید امام مشتبه هم زبی عبدالله افراد میداش امام مشتبه قیام میکه شاید امام مشتبه قیام میکه رفته صلح امام حسن نه تنها ارزشش از واقعی آشورا کمتر نیست شاید بیشترم هست. شاید بیشترم هست. شما ببینا اصن ما ارزش بندیامون نباید اینجوری باشه. کی برای اسلام چیکار کرد؟ همون کاری که امام هادی و امام عسکری کردن ارزشش اندازه کاریه که ابی عبدالله کرده. همون کاری که امام رضا برای شیعه کرده ارزشش به همان اندازیش که ابی عبدالله کرده. همون کاری که امام حسن و امیدال مومنین کردن ارزششون بندازه کاریست که ابی عبدالله کرده اینا رو از هم جدا نکنیم کلهم نورون واحد این چارده نفر هر کدوم یه معموریتی داشتن مجموع این معموریت می شود دین هر کدوم یه مسئولیتی هر کدوم در زمان خودشون به اونچه که باید عمل میکرده اینو بفهمیم اینو باید فهمید، اگر اینو بفهمیم همه چی میشه بعد دیگه رفتار معصوم رو هیچ کدوم تفسیر نمی کنیم کسه کارمانی. کارمانی اگه انشالا زنده بودم پرداشم راجع به دیگه همه ابی عبدالله کمی توضیح بدم مو اصلا عبد الله رو نشناختیم هیچ تارفی هم نداره بدون هیچ تارفی بلا نسبت نداره نشناختیم میکنیم آین این که ما میشنوزیم ما اینه ما یه جلوه ای از ابی رو در کردیم اونم به خواست خودش جلوه ای رو در کردیم کنه موضوع رو میدونیم رفتار معصوم میتونیم بفهمیم میتونیم تفسیر کنیم نه, نه. من قبل از محرم روز یکشنبه رفته بودم خدمت خانم فاطبه معصوم سلام الله علیه ها که سیامون رو بپوشیم اجازه بگیریم سیام بپوشیم. بعدش رفتم منزل یکی از مراجع خدمتشون رسیدم می فرمودن که آقای وحید حفظه الله فرمودن شیخ و شیوخ شیخ توسی و خاتم المجتهدین آخند خراسانی اینها در شناخت عبیبدالله قاسر بودن شناختن و, و ما خودشون میگفتن فقهای مثلا امروز ما در زمینه ابی عبدالله هم قاصریم هم مقصر هم قاصریم هم مقصر کی عبدالله رو میتونه بشناسه کی میتونه بفهمه ریشه این قیام عهدی بود بین خدا و حسین احدی ازش نیست، الا او و چاردم از او. الا او و چاردم از او. تمام رموز قرآن که تمام مفسرین زیرش نوشتن رمزیست بین خدا و پیغمبر ریشه این رمز در حسین ابن یا یاسین ای حسین نویسر اینجا شروع کنید تکی تکش همه این کلمات قصار ابتدای قرآن در بابه بیده با با با با آدم هم خب به قیام حرف بزنیم بریم سراغ بنی اومیه عبی عبدالله برای مبارزه با بنی اومیه بنی اومیه کیه فکر برای عبی عبدالله قیام کرد برای فتح کوفه خب اینو که عبدالله زبیر رفت گرفت ابی عبدالله بنزه عبدالله زوبهی نبود نبود حجاج ابن یوسف موفق شد مدینه رو اومد فت کرد ابی عبدالله انزه حجاج ابن یوسف نبود نمی فهمی تاریخ رو تاریخی پژوهش کنیم و ابی عبدالله باید به یه جور دیگری نگاه کرد قیام ابی عبدالله و شهادتش مقصد ابی عبدالله شد اما مقصود ابی عبدالله نبود خوبی نرزه من یادتون بمونه. قیام عبی عبدالله برای ایستادن در مقابل یزید بود این مقصد عبی عبدالله شد که شد شهادت اما مقصود عبی عبدالله نبود فرق مقصد و مقصود چیه؟ یه مثال بزنم برای تقریبه بزنین یه قطار داره میره مشد من و یه آقایی بقل هر دو داریم میریم مشد این آقا میخواد بره زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام من مثلا دارم میرم از مشهد خرید کنم زرشک بخرم وارد کنم تاجرم دارم میرم زرشک بخرم جفتمون داریم بیریم مشهد هر دومون مقصدمون مشهده جفتمون داریم بیریم مشهد او مقصود زیارته من مقصودم تجارت مقصد و مقصود با هم فعل کنه عبیب دلاله مقصد شهادت بود اما مقصود ابی عبدالله بالاتر از این حرف است چون وجود نازنین ابی عبدالله حرکتش مهور تاریخ خلق و عالمه مهور بشریت نیست مهور خلق عالمه. یعنی ذرات در کائنات قبل از واقعی آشورا سر سفری ابی عبدالله نخوندید حضرت آدم رو وقتی خدا بخشید که برای حسین گریه کرد آدم اول خلقته اتفاق نیفتاده کار عبی عبدالله اگه فقط خواست عبی عبدالله برکناری بنی اومعیه باشه گریه چه حسنی به حال آدم داره آه؟ پس این فراتر از این حرف است که ما فکر میکنیم فراتر از این حرف. برای بردن بهشت من و شما نیست خیلی بالاتر از این حرف. فهمان وجود نازنین این عبی عبدالله هر هفتصد هزار سال یک بار هفتصد هزار سال یک بار در بهش تجلی می کند هفتصد هزار سال بهشتیان دیان با نور رو زندگی میکنه، کند هزار سال یه بار خب این برای من شما رو میخوام ما رو بهش ببرن فقط بهشت سروران من بهشت مال بولهاست. اون آدمای ساده است. بهشت مال آدمای خلاصه کوچولوئه، مال آدم های پسته. نه اینکه خدای نکرده بخوایم بهشتو کوچیک کنیم. نه. بهشت مقام بالایی مقام قرب الهی است. دست کلاس متنعم میشیم در بهشت. اما حقیقت بهشت چیز دیگری است. بهشت سلمانم و پری پریو بهشت و نو رود رد میشه اینا برید تقریبی بزنه ما مردم برای من شما برای امیدی بدون برای یه کاری اما همش بهشته اونایی که در این مقامات بالا هستن اینا کیان کیان یعنی همش برای بهشت نه میشه تفسیری است اونایی که با عبی عبدالله فراتر از بهشتن فی مقعد سبقا عند ملیکن مقتدر جایگاه خود و خدا هست کسی که در حضور پروردگاره دیگه هوری و پریبراش معنایی نداره بهشت سلمان کجاست گفت علی ابن عبی طالب و هم نشینیه با او. بسن باشه شالا فردا شب اگر که توفیقی بود بقیه شون خدمتون بقیه شون انشالله فردا شب براتون ارز میکنم از همین محوره چراغاتون رو کم کنید مایه اختصرم مرز مسیبتی بخوانیم و دعاتون کنی امشب در بکنیم این شب شام قریبان امام سجاد علیه سلام یه شاری بعدی به سجاد بکنیم نه حالا فعلا اکرون نظرم به درس بکنیم یه شاری بعدی به حضرت سجاد علیه سلام بکنیم آمد خدمت امام سجاد خب الان قدر خودتون اینم روشن نکنم ممنونم آمد خدمت امام سجاد علیه السلام اول حسن دختر من گفته تا زمانی که زین العابدین خطفه ی عقد منو نخونه ازدواج نمی کن ازدواج نمی کن. حضرت فرمودن من ازادار پدرم منم خطبه یه عقد نمیخونم از که آقا گفته تا شما نخونید ازدواج نمی کنه حضرت بودن سلام منو بهش برسونید بگید که من اجازه دادم کسی دیگری بخونم آمد رف گفت قبول نمی کنه حضرت دخت اقوی من ازدواج نمی کنم خطبه منو با زین آمدید نخونم دوباره آمد خدمتش. آقا خواهش کرد. مگه هیچ من یه شرطی دارم اگه شرطم قبول کنید میام از کار من میام خطبه عقدو میخوانم خطبه یه تمام شد باید برای پدرم روزه بخوانید. اگه میخونید میام رفت به دختر بگو چی از این بهتر از این بهتر چیزی هم هست تو عالم مگه بوش بیام رفتن مرد میگه زینال آبدین خطبه عقد خاند زاکر شروع کرد در روزی ابی دیدم دیدم زینال نیست فکرم آقا رفته رفتم دمه در دیدم داره کفشا را جفت میکنه گفتم آقای من چه میکنین فرمودن ندیگه فرق کرد شد روزه پدرم باید خدمت کنیم تو روزه پدرم کفشا را رفت جفت کرد امام معصوم کفش گریه کنای حبی عبدالله رو جفت میکنه امام پدرشون نشون خوب حالا روزه های مختلفی هم شب میخونم من نمیشب اولینه میخوام خیلی اذیتتون کنم چون اصلا روزه دفنو خیلی دوست ندارم خیلی بر زینال آبودین سخت گذشت خدا میدونه خیلی سخت گذرش هر چی به پدرش نگاه میکرد میگفت خدایا چه جور منو تو قبل بس چه جوری جمعش کنم استاد شکارش کنیم این بدن چه کردن امام زمان نشنوید میگن دستشونو که بودن زیر بدن تکه ای از زمین با بدن زی... با بدن امام حسین کنده شد تو به زمین دوخته بودم اسبا خدای. خدا. اما روزی که میخواستن این عاسرا رو ببرن سوارشون کردن راشون روداختن. از بین این کشته ها ردشون کردند خدا, خدا. خدا, خدا. کار کردن که ذنه به کبر دیگه صداش در نمی. فقط با سر عبی عبدالله با سرش آره میکد حرف صداش در نمیومد. تو گوش بچه ها یه چیزی میخواست بگی فکر این کنم نخواد توتع کنه میزدن خانم رو خون میگو بابا صدام در نمیاد اینقدر داد زدم کنار قتل دیگه صدام در نمیاد من دارم در گوش بچه چیزی میگم دارم یه چیزی بهشون میگم خب صدام در نمیاد بلند میگم کی باورش میشه زینب <تصفيق> کبرا رو چهل منزل ببرنش اخ اخ اخ اخ همه بگم الان یاد شد داشت شب فرشب زنده نباشم بگم شیخ مفید میگه بین الحرمه این وای ساده بودیم مخواستیم روزو بخونیم ظاهران هم میگن یه شیخی شاگردش بود که صدای خوبی داشت این روزه میخوند میگه همچین که زیارت نام تام شد مخواستیم رو به گنبد و بارگاه عبی عبدالله روزه بخواه میگه این رو چیز کجاست این رو طلبه کجاست که میخونه گفتن آقا نیستش داریم دنبالش میگردیم پیداش نکردیم همین که منتظر بودن یک مرتبه دیدن یک سید بلند قامتی آمد ایستاد گوشیخ مفید من روز بخوانم گوشیخ مفید امام زمان رو میشناسیم کو آقا چی از این بالاتر تو روزه بخانی میگن همین که حضرت خود جد برگشت به طرف بقومی و بارگاه ابی عبدالله که از سلام علیکه یا جده یا ابی عبدالله ما به هم ریخم امان شیخی مفید بخوام یه روزه ای بخانم اگر جد من بود گریه می‌کرد، علی اکبرم بود گریه می‌کرد، حسین من بود گریه میکرد میخوام روزه اسارت امم, امم رو بخورم شی میدونیم از روزه را... اصارت اصارت باشه برمیشه با. برمیشه با. برمیشه با. برمیشه بسم الله رأس تو را به روی نهی هرچه نظاره میکنه نمی شود دلم نگه دوباره می کنم گمان کنم دشمنان نیست به من زبان بس که دور با سرم به سر اشاره می کنم به خود بگو که گوشوار ها چشو یه یه به گوشوار نه بگوش گوش پاره می هم سرتو هم سر تو بر سر نیم همسر اکبرت زپه گاه نگاه سوی من گه به رمی میکنم حالا شما بگید جان حسین جان حسین